Thank you. رویایی بر اساس یک داستان حقیقی چیزیه که به در بزرگ میگه احتمالا ما تنها مذایی پراوش عصد در این منطقه هستیم که حتی یه عصبم نداره حتی یک امروز به رستوران برم میتونم استخدام بشم خب سه روز در هفته فقط صبحانه و نهار اگه تو رستوران کار کنی وقتی کهیل بیاد کنه کسی اینجا نیست خب پاپ که همین بغر زندگی میکنه. میدونم شما با هم حرف نمیزنین اما اون کهیل رابطهشون خوبه و وچی چی؟ ماهاز که بهش قول دادیم اونو یه روز با خود سر کار میبرم میبرم میبرمش اما امروز نه امروز یه مسابقه بزرگ دارم خب من بهش چی بگم اونوش که بود دیرم شده بود و وقتنا داشتم منتظرش بگم خودت میگم. من دارم میرم سر کار فالو خوب سوال شو نمیخوام دیر بشه سونیاره بفرست نظر بیرون بده میخوام کارشو رو لطفاً یه سطح مخلوط قلات دیاریم به آخر شماری سر صبح خیلی صبح خیلی حالان خیلی خیلی البته زیاد این طرف پیداش نمیشه تو چقدر بزرگ شدی باورم نمیشه حالان کوچولو. با نزدی هست رای بیه یه نمیش منش صبح بخیر. صبح خیلی باشمه سفول داده ببرش تو بیا آه آه آه آه مگه اونجا چی داری؟ شیرینی دادی؟ ای سانیا آره سانیا آره اون سانیا آره شبه شیرینی جدی دوست داره اره. ای این که سوارکار جدیده بینی اون جختر منه سلام ملالین بلدت بزرگترین سوارکار دنیا سنگی منز ترین سوارکار سنگی منز چچو من فقط قدم بلده یه نگاهی به خودت بکن مرد لباستو ببین اینجا استبله نه مهمونی اه. او او او. از لباس پوشیدنم خوشش میاد حالا پدرتو میبینی؟ ببین چطور اونو لمس میکنه میبینی؟ فقط میخوای مطمئن بشیم از با سالمان و سلامت هم پاهای عصم مهم هم پدرتم داره چکل میکنه بعدم میگم چجوری این کار رو میکنه خدا خب, خب ممنونم مارک باشه بیا خیلی خوب، اینطور که مشخص گریمندلا بله، گریمندلا شماره دوازده است من بازم درم میگم، درست نمیدنم خوش ظاهرا خوب به نظر میاد، اما همشون رو بلند میکنم حتماه میخواد برگرده آفارش نه، این شاکن کنه نمیده اموز ثانی اموز، با اموز امروز مسابقه میده؟ البته که مسابقه ده؟ آو، سلام می بخواد از دیدنی تو خوشانم مطمئن نمیدم امروز بیاین فکر می کنم این نقای رو بشنسم. ایشون آقای مارینیا هستن خب سونیا همون قدر که سریع هست با سلاملاتم هست. من بعد از اینکه صحبتم تموم رو تو جایگاه می بینه بهتون او خب حالا بگو داستان چیه ؟ اون رختار عجیبی داره حرارت فای رافته درش سی چک دارمرم امروز بخواد بدوه من گرمایی احساسه میکنم دامپزشک چی می‌گه؟ دامپزشک داور میدان رو خوب تشخیص دادن اما من فکر نمی‌کنم. خب خوبه. من همینه. من که فکر کنم امروز لازم بشم مصاحبه با کنم. آقای مارینیو با هواپیمای 737 اختصاصیش این همه راه اومده اینجا که چی؟ من نمی‌فهمم. جوانم برای تماشای مسابقه اومده. اومده تا رو شکست بده. فقط برای این اومده که ببینه یکی از اسفشاطرین مسابقه از پای برادرشو شکست بده. با این کار داریم در کار قهرمانی که دو مسابقه اولو برنده شده اختلال میکنه حالا میشه ستا اون یه است من شک ندارم خیلی بیشتر از یه سفراست من به اسبا گوش میدم اون داره میگه اگه استراحت کنه خیلی بهتر اگه به من گوش کنی میشه ببین اون اسب خوبیه اما من برای این اسب اسبا میلیون ها خرج کردم تا جناب مارینو بتونه برادرشو مغلوب کنه و میدونم که تو نقشه های بزرگی داری اما فقط کار تو باشه مراغبت های روزانه نظارت و سرپرسی تمرین ها این شغل توه انتخاب مسابقات اینم شغل مدید بهتر نیست چرا بهتشان خوبه اون به محبوب منم هست دیگه پرو اگو تیماردار راش ببرم تا آرام بشه بیا خیلی خوبه باره شاید این که بریم. شروع و مسابقه زمان زیادی باقی نمون. رقابتی که از اون لذت درصد خاطره. حالا اینجا محسوسه شایدن اصل. سوارون در این پس قداد زیادی از اسفای شکلت داده شده از حیالتها و شهرهای دور بیشو شما پیتیرو، پرشینگولد و مکبولین از جمعه اسفای این هست. هست خودت آفنوات و شفلت نیواردی؟ حدا جالب اینه که در این مسابقه ما چند شاب و سوار جوان و آشده شورت هم داریم سخارمش که گروه پزشکی قبل از مسابقه گفت این رقابت بسیار دیداری و داق چیزی د آیا این یک مسابقه معمولی نیست؟ حالا رقابت شروع میشه. همه چیز برای یک مسابقه دیدنی مهیا است. مسابقه بین برترین اسبهای منطقه. سوار cavalopici اول رو با اسباشون پشت سر می‌ذاره. از از برای پنج از بین دیگه خودشون میکششت یه دون برای که دری خوب بود برای آلیه برا برا برا آلیه تا باور نکردنیه اون انتهای مسیح چه اتفاقی آفراد بخش داد هر چه سری سب به میدان مسابقه برن و تماشای هم لطفا در جای خودشون بمونونند. هیچ تماشای وارد میدان مسابقه نشند. اگر توا میکنیم از, از زدهان در, در اطراف اسب و مصوم خودداری کنیم. هر فزشگان هرچیز محتر خودشونو بالای سر عصب و اصفون برسوند. که زنی اسمه سبارش برسوند. نظر تکون بکره. محکم نیگرش دارد. متاسفه و تناسش بر. آروم. آروم. آروم آروم برسوند. آجا. آجا. برمی بینیمش تو استرد. آزین چون رو گرد. آروم برسوند. آروم که امزانه نمیتونم خمستش کنم میخوام نمیخوامم از پاش عکس بگیرن آکه بیجی بیجی موضوع چیه؟ بینون کارش دیگه تمومه اصلا باهارم نمیشه من بهش گفتم چی؟ تو من چی گفتی؟ اختیار کردم که اون حالش مساعد نیست توزینش کردی؟ چی؟ صابكم ببینید من میدونم که خیلی غم اما این چیزا همیشه پیش میاد غم آره غم اون یه قهرمانه آره اون وقت تو آگاهانی یه قهرمان 750000 دلاری رو کشت ما باید یه کاری بکنیم آقایون چه شده وسط خونه ساقش آقای پال اش فشار اومده باید در پرورش پرورشد دهندگان میدونید اون استستایی بود حالا یه پا شکسته کارش تمومه راحتش کنید چوب هیچکاس اهمیاتی نمیده اینطوری نصو نه خب در واقع اهمیت میدم بریم برای همین هم این فرصت رو میدم که یه کار جدید پیدا کنی اخراج هم میکنی؟ کاملا درسته میتونی دورو برای یاد هم به خود ببریم اونا انسان اونا اسم دارم تو به من بده کاری سر ماه چه که تو میگیری درست مثل سونای دیگه همین حالا پولمو رو میدید نو هزار برای سی ماه گذشت این شش شش تا. میخوای یا میخوای؟ معلومه که میخوام ما روی نه تا توافق کردیم. پس سب کن تا چک تو من بندون میکنن پاربر. نه خلاصش کنید حالا. الان داد سب کن، سب کن، سب کن. من شیشه میگیرم با اون اس. شیشه زرتا با یاسم به مرده و من دیگه حرفی دربارش نمیزنم. درست. یه پول تو بگی. بهش آرام بخش بزندن یا آرام بخش قبی که شبو بکنم چار ست و ست داده تا از شدی جسدش خلاص شد میشه بری بانیتو بیاری؟ خیلی کلشقی درست مثل پدر پیره زود باشید بری بانیتو بیاری زیدی در آزای که اصبی نداره من اونو ببر سوار ماشین کنم برو توهم من از شما خیالات واییه که دارین قرد از اینکه برسه تموم کرده منی بله برو به پیرمرز خبر بده بهش بگو وضعیت استراریه های بلا ما یه جرسقل کابلی برای باکسر کردن احتیاش دیم تا اونا آروم ببریمش بهستر باشه کجاست اونجاست اون خوش باشه فهمیدم حالا کجا خدا. یه من خیلی نگرانه شدم موضوع چیه یه اسمه در حال مرگ داشت کار دیگه ای نمونده چرا به بالم کمک منی من اینجا ببینم شما نواقعی وقت شب توی بارون به چی وضعیت استرالی میگیم هماش به فطر یعصبه شب خیلی من هیچ وقت از تو چیزی نخستم ما هست که هیچی از ازت برای همین هم هست که کار رو بارده نفسی کس. من اونجا یه مادین با یه ساقه پای دارم بگیر اصف اصیلیه اصف مسابقه است خلاسش کن خودت هم یه بار یه با ساقه خوب شده داشتیم براش جاینداختی پاسچوش خورد و اون اسب این عبرش شد آن منه تا قبل بود فقط یه پسر بچه بودی به اما من یادمه اون خوب شد ولی اون یه عصب کوچیک معمولی بود فقط همینقدر خوب شد که بتونی یه چند سال بیشتر این اطراف راه بره تا مجبور نشم خلاسش کنم اگه تو یه ذره عقل داشتی هنی الان این کار رو میکردی توی سر کیل میخوام که با کنم مامان کیل منم چم کشم همین یرن با مامان بای خون بچو بگر دو نندش کنیم دو بیا بین بی من نیمش ده خیلی بد اونقدر که نتونست از جاش کنمشه ببون از خود در حرف همون که گفتن عکس منم تاییلشون کنه یه شکست گییه ثخت استار ثابت ب ما سخنش جای اینداخت. دیگه نمیتونونه ما سبقه بده؟ نه اما ممکنی دوباره رابر هنوز یه شانس هست. به خودش مربوطه کاملا آارم گرش داریم به نظرم گتی که گرفتیم بایدت خوبش کنه باید ثبت داشته باش. خیلی مراقبش باشین میفهم. خب بیاین تمام بندار ببندیم بکشیم بالا تصمیح ها و بقیه وسایل روی دیگار آویسان بین وقتی آقای پارمر اخراجت کرد خب هم اخراج کرد از. پس... ما دیگه کاری نداریم متاسفم بچه ها یادم رفت بیاین اینم نفری حساب چی شده خب ما واس با مسابقه را آموزش میدیم درسته اون که دیگه نمیتونه مصابر بلده پس ما دلسته... چطور بمونیم و کمکت کنیم تا این اسب را بیاریم یعنی چی چرت نگوش <متنق> هیچ میدونیم که در این اسب کی بود؟ دیرم کچل میدونین اون کی بود؟ ها دیرم کچل کی بود؟ برنده جام جهانی 1996 هفت روز دور مسابقه او برنده شد و 3 میلیون دلار بود حالا من قطی مارش می‌کنیم تا با یاسمین درج جفت به شوی یک کور را بدونیم. نه یا نه. شده که اگر کور یاسمین نار تربیت بشه. چه 600. 600 هزار دلار. شما تا به بخش از اون 600 هزار دلار علاوه من دیگه. آره چه جود؟ نظرت چی فو؟ گرفتی؟ نمانیم. Ah, ah, ah. Es para hacer más jugo نه حالش چطور آن خوبه راجی چی کار میکردی؟ اون که یه, یه بون خونگی نیست من الان دارم بوش کار بکنم حسابت اونه با حال خودش بذاری باشه مذارت کام مطمئنی حالت خوبه؟ خب ماییم <متحق> مچکرم پول در میری که هرچه قد دلت خواست کیک بخوری آره بیتر از این کاری برای من منی منو میبرو تو سواب کاریشو تموشا کنم بعد میرم اصطب پیش سانیا تو فکرم اونجا رو رنگ کنیم خوبه که یه عصب داری به خصوص بعد از اینکه که پدر بزرگ گفت تا وقتی که من زندم دیگه هیچ اسبی در این مزایی <محسن> نخواه اینو بهت گفت هرچی رو که پپ گفت گوش نکنه هر داستانی دو جنبه داره پپ گفت پدر بهترین پروشتن رفت گفت با استعداده خب این درسته میدونیم که حقیقت داره زیفی آروم بزن. معبدنا ماچ. نظرت دربارش چیه؟ توندتیزه. خیلی قشنگه. متشکرم. من چنت از اسب‌ها رو برای صاحباشون تمرین میدم. خیلی جالبه. ما شرکت کردی یکی دوباری اما نبیشتم چرا آه... خب خبایی بعد دیدم سه سر, سر پیش روانی مسابقه واقعی آقایی ما دادم پنجام شدم اسم از چی بود تاون تاون سویننگ فوقالده بود دوباره سبرش شدیم آره در مسابقه دومم دو اول داشتم پرواز میکردم بعد به پایین نگاه کردم ببینم دارم مسیرم و درست میرم وقتی دوباره بالا رو دیدم یه از چار نر به طرفان میومد پای چپم از رکاب در اومد افتادم زمین سه تا از روم رد شدن هر دو کتبم شکست جناخ سینم بارت از ها ریم هم پاره شد دیگه مسابقه ندادی؟ میدونی چپ ها وقتی خوابم میبره میبینم توی مسابقه سواری اسب سریع هستم پای چپ همون میبینم که از رکاب در اومده و دارم میافتم زمین اما قبل از که بخورم زمین بیدار میشم ولی هم تمرین سواری میکنی آره فقط اونجا من اون اسب عصب... تک و تنها تو مسابقه آزاد و راحت هیچ کس مزاهمه ما نمیشه اینجوری به نظرم فوقولده هست کابوسات تو را نراحت میکنه اشکاری نداره شاید بهم میگن نباید مسابقه خیل اون سیمی که زیر حسار میدی به من آره نمیتونی گلیش کن خب گفت این قشنگ بوده این مزرق خیلی قشنگ دیمیست جرید یکی با زیبات این مزرگه های این طرح. اونجا هم میدید؟ آره اونجا هم ها مال ما بود خب چند تا درجه یک بری مسامله داشت اسبای ماده و بزرگ و تیز رو راستیم گفت کلی ایستاب ساخت و پر از اسب کرد. آره با فروش کره هاشون زندگی خیلی خوبی داشت. ما شما می‌خاستن کره اسبا رو برای مسابقه نگه داری؟ خب برای مقابل چاره‌ای نبود. اسبایی که تو این مسابقه بزرگ شدن ولی یکی دیگه تو مسابقه برنده بشه. باید از پپ می‌خاستن چند رو تربیت کنی و مسابقه بدی. نمی‌شد اونارو نگه دارید. باید می‌فروختیمشون. اون فروششون زندگی می‌کرد. روی اننشاد کار می کنی؟ بله خ داستان درباره چیه درباره یه پادشاه و قصرشه و یه اسب رویایی میتونه وایسه اما نه خیلی میتونه وایسه چند تا دیگه دیگم ازش میگیرم ولی دلیلی نمیبینم نتونه و ولد کنه اون حالش خوبه خواب من میرم با یکی مشورت کن حالا کجا میری؟ میرم یه دوست قدیمی رو ببینم. به خاطر بچه دنیا آوردن سونیا؟ آره. بچه دنیا آوردنش. خیلی اسفری میبینی؟ چانیس کازمی؟ شو هاسبرگ، بالنده‌ی سالانه شده. اینارو از پاپ یاد گرفتی؟ اون و قشنگه. آن سلام بی، از دیدنت خوشحالم. منم از دیدنت خوشحالم. این دخترم کیه؟ سلام. از آشنایت خوشحالم کی. منم خوشحالم. به این دو ماه پیش زنگ زدی و گفتی یه ما مسابقه داری که زخمی شده و گذاشتی خوب بشه بعد دیگه خبری نشد خب زمان سیادی رو با ام اما دیگه آماده از خدا حاصلی کمک هم کنی از این وست در <تصمت> بیا بیا نیجا خیلی خانم ها و آقایان و اینم بزرگترین اسب مسابقه دنیا داد بیارش بیا. اون که نه سردر نمیاد. براش تالزی بده دخترم اون تندرپینس یک رسب شیطانه اون به سنیا کمک میکنه تا آماده و امکان بچه دنیا آوردن براش محیا بشه هم رو هی کیل میخوای با اصبی که انتخاب کردم آشنا بشی؟ کیل با گراندسلیم آشنا شد گراندسلیم؟ من هم سر خوبی میشه خب چی میگی؟ من به نظرم اصمه مرکی خوب همه اینجا برای خانوادت احترام زیادی قائلن من موقعیت تو توضیح دادم و اونا میخوان این لطف در حق بکنم نمیدونم چی بگم بگو چه هفته اولی مهمه ما دیانتو میگری اینجا اون هفته تنها شانسی باشد. که داری بعدی که ممکن نیست و تو باید تا آخر هفته نصف پانزه هزار دلار رو برام بفرسید گفتی پونسته هزار دلار پس خب نرخ معمول کاس گرندسلیم ۲۰ هزار دلاره در این خیلی تخفیف. آره، آره. این 15 تا هزینه بمونم جبن نه, نه، بیم پیشنهات فوق العاده ای من فقط تو این فکرم که شاید هستم بشه سهمی بابت بارداریش داددم شاید همین میدار جوابوی تمام هزینهات باشه چی؟ ما این کارو نمیکنه اونم در همچین موردی در این میگی میخوای فصلش نه فقط. بیل من این پولو ندارم متاسفم بین من اصلا موقعیتتون نمیدونستم بیل گوش کنون من از تراشت جدا ممنون و سفاس گذارم و... بهتنگ بچنم باشونم مچکر بیلید من هیچ وقت رو هم از نزدیک ندیده بودم اون خیلی ازالانی و ورزیده است اون چی گفت؟ اون یه عصبه میدونم اون چی گفت که <تصفيق> من یه قهرمان بزرگم زمین زیر پاهایم به لرزه در می خوشید بر خوشید برمن من و من به پیش می دازم. راهی به سوی پیروزی و من با صاحبم در پرندگان آشنا شدم. آنجا <تصفيق> که یک بغل گل برپشتم این یادت بود پس که منو میبریم مسابقه خب ؟ من دیگه نمیرم سالهاست که نرفتم پس میتونم این برگه رو با خودم ببرم درسته پدرت نمیخواد چیزی درباره اسبا یادت بدم یعنی نبرم بذارشون زیر پیل همه باشه که تو کابینت برای زرف شوی خواه یه گوچی فخر است اونو ببر برای پدرت میشه حتما شبخه شبخه سینه تو استاپ این دیگه چیه این هزار داری ازش استفاده کنم ها که دارم قراط بابر نکردمی تقریباً 20000 هزار این تو تو شاهد بودی که این مزهر تیکه تیکه میفکتم تا اینکه چیزی ازش باقی نمود. چرا این کار میکنی لانت لا, به من اگه میدونستم اون اصف و تربیت کن به آریدن اون اسب ترین کاری بود که تو این ساحا انجام بزرگترین حرکتی رو که میتونستم انجام دادم ولی آخرش تسلیم شد من واشکستامم انتظار داری چیکار کنم انتظار دارم اون پول ورداری به شور فچیده اعتماد کنین و از اون اسب کره بگیری تو گفتی خلاصش کن اما تو نکردی تو یه پرورشتاندهی ارزش میخوای می‌خوای بقیه عمرتو سر تو پر کردن شکم اسبای پولدارا بکنی یا دوباره برگردی به مسابقه من میدونم اینجا به کیل در مورد اصبا چی نگی این کار تو خونه شو بند کیل بچه با حوشی هست اینقدر کلاشو با قصه های اصبای جور با جور پار نکن قصه تنها چیزیه که من اونان برای خودت نگهتار وقتی کوره فروختن روختم پولی تو پس میدیم کارشان گهداری و باهاش مسابقه بدی نه میخوایم کلش رو بفروشیم اما هنوز سنی در داریم سانی دو حالا آره این اسم کامل سنی دو به کلاه اسپانیایی باشه اسپانیایه جیمر شب به خیلی ببت میرم بشه پا نه؟ <مت> اونو چند روز با کار دارم من دو شمبه چارشمبه و جمعه رو گرفتم اما میتونم بیشترم بگیرم فالبر به همه جا تلفن کرده به همه جا خرابم کرده نمیتونم کار پیدا کنم. باید قرار داده امسا قرار داده فروش ملک همهش فروخته شد تنها زمینی که باقیمون بیا همینی که روش نشستی نا ولی نامه صاحب مالکیت باقی سلام که سلام دکتر. سلام منی سانیا برای اون یه کم پول در میاره این اصبیه کوره استیسایی به دنیا اینه اینجاست من اینجا خب الان تلفن به بیلو قطع کرد دوباره قرار گذاشتیم میخواییم از اون را کور بگیریم بین من تمام آزمایشاتم رو کاملا انجام دادم و خبر بدی برات چی؟ اون نازاست یعنی اون بچه دار نمیشه؟ نه عزیزم اون هیچ وقت بچه دار نمیشه باقا متصف تسفیم سانیا تقریبا صحب شده تمام شب بیدار بودی من چی فکر می کردم میخواستم از اون کرده بگیرم که ایلو نصبا دوست داره خب چون دختر کوچولو نابود اون کرد اون دختر کوچولو بهترین اتفاقیه که تو زندگیمون افتده نصفان ده. دهی از وقتی که اون تو این طویل است ما یه خانواده داریم برای اولین بار در تمام این سالها من هفت روزه هفته رو تو رستوران کار میکنم شاید تو مجبور بشی وقتی تو با دختریت بگذرونی نمیبینی اون چقدر میخواد با تو باشه؟ میدونم که پدرت معیوست کرده اما این دلیل نمیشه که تو هم حتما اونو مایوس کنی این به. هیچ ربطی به پدرم نداره نه اتفاقا همه چیز به اون ربطه اشتباه میکنی حقیقت اینه که اگه کل اون شب همرام نبود اون اصباح همونجا تو سبب بل و میذاشتم خلاصش کنم به هنوز شغلم رو داشتم شاید؟ من Hey. بس هم کرد عزیزم میتونم بیام تو یکم بیر زمان میدیم okay. زود باشه عزیزم در رو باز کن خواهیش هر وقت آمادی گیدش خودش مید پایین ما با فرار می‌کنیم، فرار می‌کنیم به یه جای دور. عالش خوبه؟ علش خوبه؟ چزنی؟ حالت خوبه؟ ها؟ واسه شما؟ ها؟ ای بد. حاله کیل چطوره؟ حالش خوبه؟ حالش خوبه؟ آره حالش خوبه خوبه میشه یه رقب حرف بزنید؟ باشه سونیا چطوره؟ اون همینطور در امتداد حصار میره و میاد و م... ما داشتیم بابا نت دنبالش میکردیم که ما خورد زمین حالش خیلی بده خب تو با که بودیم چهل کیلومتر رو نشون میداد و اونم اون همینطور تند و تند تر میرفت آره اون خیلی قوی به نظر میاد قربان. چی می میخوایین بگین؟ میتونیم مسابقه بده؟ میتونی سوارش کنیم ماریاستا، درست مثل سانگیب خواه شکست همون شکستگیه و همون نقطه ماریاستارم کیه؟ برای از مسابقه فوقلده ایمون بایه بازگشت باز در مسابقات مرحله ای از سواری سرنستانگو شکست داد وقت اکسای سانیارو دیدم فکر کردم باید اونا رو میشونم بدم خورده. اون سکنش دیوش خوردن اون دیگه خوبه میخوایم میخواین برگرد مسابقه به خودتون مدونه موفق باشید ممنم درکسید خدافز خدافز خدا باشو میکنه خب چطوره به نظر بزرگ میاد بزرگ از نظر قوی بوده نه بزرگ از نظر شاقی شوخی میکنی شوخی میکنی نه ولی این حرفا بزنی به خاطر اون همه بستنی یکی خوردی. چی چی نمیدینستی که من اینه <تصفح> You have to do. You have to do. Yeah, she's. She's. Hmm? ظرف پنج هفته این بهترین کار یکی کرد یه هشتومه کیلومتر در سی هفت سال اونقدر سریع نیست که بتونه چیزی برده بشه شاید یه اسب فروشی ارزون در بلوگ راستند اون اسب برنده جایزه مرحله‌ای بود حالا یه اسب فروشی مسابقه شد شاید فکر بدی نباشه که یه دور بدوه ببینیم با یه مسابقه واقعی حالک جامیه منم تو فکرش بودم پدر برکت نمی‌گن یکی ازشی بشه. تا بودی یه عصب پاشه که از سرمی برنده بشه. می‌تونی یه پول حسابی بشه. جلوتر از کدام دنیای برایت هم؟ I can do. همه چیز داره به خوبی با دست بود. بیمه هوا پیش میره، خوب به نظر میاد. آره. اینکه لاست ماچلوت بیهواپا پیش میاد. دی‌جی کو خودش رو میچشه جلو و فرار. کوبر، کوبر. برو، برو سریعتر. این Aspect استثناس. است. با انتهای مسیر چی با اینم؟ علیاش فشار داره. از پای خودش رو جلو اینجاست که تجربه و درایت چاوک سوار به و اومد. از واسه خط پایان قهرمان بهترین چاوک سوار با بقاوت من و آسمش بکشه. اتصال می‌دهیم. تقریباً به دور پایانی رسیدم. چه سوژه‌ای دیگه استی؟ زداسان. رف. بیچاره زیبا آبیوسفیوری. در یک جدی فرار می‌کنه. اگه شدی تابو رو یارو حتماً می‌شنیدی. من دو به خط پایان نزدیک می‌شان. رقابت سعینی و اینو مطالعه داده‌ام. با بازیهای خیلی خوبی از اول از دیگر، از بازی‌های پایان می‌کنم. خوری دوسته بام اختلاف سید دستانه کمی کن بود یه اگه مایک بشه اجازه میده فکر کنم اون برنده میشد خوب خبا خبا جایده شقدید هزار و سب زودان بینکره من به فروش چی شوخی میکنی فروختیش سکمو اینم دست نگردم. تو که گفتی کسی اونو نمیخره که گوش کن چی میگه اون برگه چی با نیست... چقدر بابتش گرفت پونزای زارت جو سانی دارو فروختی خواستم سنیا رو بکشم. از بین ست تا عصبی که اونجا بود هیچ میدینی فقط چند تا چه خریدن و بردن؟ تو اینو نمیدینیستی که حتما قبل از شروع مسابقه باید تغاظه مالکیت عصبی رو بکنی من فکر نمیکردم کسی از این فرصت استفاده کنه و مادیانی روی که قبلا پشت شکسته رو بخره فکر کنم این یه فرصت بود اون دیگه رفته خوبی بود که منم دلم برش تایم با من مثل یه بچه گجولو حرف نزن میخواستی بخشی از پس پستگری که گرفتی میفهمم تجابت همین. راسته همین. اما نبخواسم سونیه رو بخروشم میفهمیم به من رو گفتی گفتی سونی همیشه نگه میدارم همونجا وای اینو گفتی بردش تو مسابقه فروختی اینو بفهم که همیشه همه چیز اونطور که تو میخوای تموم نمیشه. اون که فروشی نبود تمام اسبای مسابقه در همه جای دنیا همین الان فروشی هستم اینو که میفهمی اون که فقط اسب مسابقه نبود اسب ما بود گفتم شیفته شبه رستورانم کار میکنم گفتی امشب برای جلسه اولیا و مربیان مدرسه کیل میدیم؟ من سفت یادمه خیلی خوب بود و بوی زمینی نیسوخ شده میداد من خوشحال بودم که بدرم منو بیسکای آتش نیستم متشکرم خانم یو سال متشکرم بن کرین ملخانم من از خوندن داستان کیل خیلی لذت بردم خیلی خلاقانه بود اونجا تو اون پوشه آبیه بفرمین جلو. روزی روزگاری پادشاه مهربانی بود او در قصری زیبا زندگی میکرد که مشرف به دشتی بود. ناگهان طوفان شدیدی همه را تاریکا سرد کرد و پیش از آن که پادشاه متوجه شود جنگجویان قلم رو را تکه تکه از او گرفتند اما پادشاه می که اگر بتواند تواند رویاییش را پیدا کند می تواند قلم رو به پادشاهیش را حفظ کند ولی او مثل اغلب پادشاه نبود او پادشاهی آرام و مهربان بود شاید خودش را نمی دونست اما همه او را دوست داشته گشت و گشت تا سانجام اسبش را از رودخانه خروشان نجات داد. ولی تا زمانی که اسبش را آزاد کند قلم روش از دست رفته بود و او تسلیم شده عصب رویایی همه چیز را می دانست. آن اسب او را با خود از رشتکوها گذراند و از رودهای خروشان عبور داد تا آنکه وقتی به نظر می رسید که خواهند مرد از پادشاه خواست به او اعتماد کن پادشاه نمیدانست آیا اصب واقعا به او حرف زده یا از انجا که چند روزی بود چیزی نخورده خیالاتی شده است <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مدت کوتاهی پس از آن است سرکت از شیب کوهستان بالا بره و در پادشاه اطمینان داشت که خواهند مرد اما اصب رویایی به قله رسید و آنان در گله کوه قلم رو به خود را پس گرفت آنهایی که پاچه ها رو دوست داشتند با چک و قهوه به استقبال او رفتند کیک میتونم نگرش بله به تو بس از اون پادشاه آره همون پادشاه نو من اشتباه کردم که متاسف از پادشاه پادشه خوشت اومد آره از اون خوشم پادشاه یه قسمو دوست داره اونم چون دوست داره مفار آمدن تو رو ببینم کیل من <تصفيق> یه بازه جدید برای پاپ خریدم میخوای از ماشین بیاری خیلی با فقط من نبودم پاپم کمک کرد برا <تصفيق> خب من تمام مدارکیشو حسی کردم کرید ما 51 درصد از رو به اسم تو کردیم پس از خالا به بعد تو تصمیم میگیری نگران نباشتم هم نو درصد داری بالان تو و منیم میتونیم در درصد وقیر رو نصف کنیم چی داره میگی دارم به دارم میگم به مسی که اون این مدارک رو امضا کنه صاحب جدید سونیدور کل کرینه کار مسابقات از سوالی خوش مما دیدی تبریک میگم حالا برای اون کار میکنی باشه رایی باشه چی میشه پس بریم بریم از به خوشی پس بیار اولا گرمش میکنی بعد که خود گرمش کردیم 14 دور می‌زنه. می‌خوای تایمون رو برش بکنیم دیگه. بعضی میتونیم تقویتش کنیم ها؟ امم آره، باید تایمون رو بکنیم. چیزی پیش آمد حتون خبرم کن خیلی شب hey. زیادی بیدار نموندی؟ سبب بقید سونیا رو میخوندم اون بیشتر از دیویست هزار دلار برده آره می‌دونم. این یعنی واجد شرایط مسبقاته من مقرار رو تو خوندم که میگم خب مطمئنم این چیزی توش در میاریم هم کمکم کنی میخوام تربیتش کنم صحی چقدر برمو روی در نظر گرفتی چقدر گیره من میاد ده بیست تا پونزه تا قبوله 10 کنم از همه تشکر میکنم که اومدین تمام مسابقات رو برای سندار بررسی کردم و اونی که برنده میشه رو انتخاب کرد افرادی و این مسابقه کی هست؟ شنبه 29 اکتبر. با بهترین سوارکار حرفی اسمش هست مالالین خب مالالین بالارتا که منم این خیلی خوبیه. خودت به من گفتی یه سوارکار حرفه‌ای هستی. منم باور کردم. امم، اما چاکرم. خیلی موچکرم. اما من آمادگی‌شون ندارم. خیلی چاقم. باید رو لاغر کنم، درست میگم؟ اما 29 اکتبر همون روز مسابقه جامع قهرمانی پرورشده‌ندگان، نه؟ بزرگترین مسابقه اصلاً. یعنی همون 8 مسابقه‌ای که 14 میلیون دلار ارزش داره. تو که نمیخوای در مسابقه شرکت کنی که همون جامع جام پرورشده‌ندگان برگزار میشه. حق با شماست. نباید روز مسابقه پرورش دهندگان در مسابقه دیگه شرکت کنیم پس سر مسابقه پروشت اندگاه شرکت میکنیم خب این بلند پروازیه ولی نمیتونه همینطوری مسابقه تراز اول اگه میشد خوب بود بیدونی مراهل انتخابش چیه خوب چهارده تا عصب شرکت میکنن هفته اول که بیشترین امتیاز میرن و هفته آخرم هم... نه نه واقعا نمیدون هفته آخر بر اساس عمل در طول ساله اما میتونن تواظای رستگی کنن میخوام تلاشمونو بکنیم تلاش زیادی لازمه به هر حال چرا سانی نه چرا ما نه آره چرا سانی نه پس میریم به جامع پرورش دهندگاه <laughs> تو واقعا نمیدونستی <harbor> <battling> واقع اصبای آخر چطور انتخاب میشن؟ دور حساب یه دوره قبل تغییر میکنه. بهتر شده ما صدیا راحت میره پدر نگران نباش. بالا من منو. بیروتچس. اینه؟ اینم مال این پرتغاله. بیشتر شبیه یه توپ گلف رنگ شده موقع دویدن به نرده ها نزید تو مال من بیا بیا سانیا نصف خوب اما قربان، اسب من رپیت پسر استرومکت بهترین پدر برای یه لایق در جام پرورش دهندگان شرکت بکنه ببینین آقای سرپیکو رپیت در فرست امتیازات هجده همه ما فقط چارده تا جا داریم امید زیادی برای رپیت نیست بعدی <تصفيق> آقای کهل پرین اینجا من کهل چرا نمیستی؟ <تصفيق> دوشیزه کلکرین اسب شما سونیدور گیست امتیاز آورده که اونو در ردیه شانزده فهرست قرار میده البته سال گذشته چلا دو امتیاز داشتن بله قربان امسال هم امتیازات زیادی داشت اما مجروف شد اون مجروح شد حالا گزارش یک پزشک دارید که بگه سالمه؟ بله قربان متشکل خواهش چهارده حصف میتونن در این مسابقه شرکت کنن و حصف شما این شانس داره اما برای سبتنام این حصف در مسابقه باید چل هزار دلار بپرداسید چه که شوها پاسش <تصفيق> بزرگین اینم بگم که هیئت داوران تصمیم میگیرن سونیدور در این مسابقه باشه یا نه و 80000 دلار رو دیگه هست که شما باید تا 26 اکتبر بپرسید. آماده جه پرداخت دارید؟ اونم پست میکنه. <تصحنت> آماده کی دارم. الان؟ گوزینش نهایی فردا ساعت 11 صبح بس تمومه تمومه تبریک میگم <تصفيق> مردی سوار بر اسب سفید برای نجاتم آمده خدافز من میرم باشه خدا فردا میبینمت میبینمت <تصفيق> کیل پیش پپه در اون نقشهای مسابقه کار میکنه آه. پس شرکت میکره؟ به دلیش نقای فلاسوبه کیل پیشه یتیده و بران کار راستش خیلی سخت، اما اون از پسش برامد چرا لبخند ؟ نیزنی؟ خوب جوابشون رو داد <تصفيق> <تصفيق> اون منو یدی یه نفر مندازه مثل خود تلیم عالی گذاشتم سعیشو پر وقت خواب آ این بهتر از اون سطل آره. چقدر روی برده سونی دار حساب باز میکنیم فکر میکنیم برنده بشه خب باید فکر کنیم برنده میشه زوری داره فکر کنیم برنده میشه اون برنده میشه میکنم اون برنده میشه خوبه اون احتیاج داره اینو بشن دوست دارم ببینم که تو برنده میشه. ممکنه لطفا توجه کنید من افتخار دارم اسامی شرکت کنندگان در 27 دور از مسابقات جامع پرورشدهندگان رو اعلام کنم. به ترتیب حروف الف با شروع می‌کنیم. کنید ای پی فلایر آرگوس بایسیکلمان بی جای کو چیف بلار گلیاس بوی گراندوک ای کنید این درون نوکس ویزل انده هبس و دو شرکت کننده ی دیگر مصابقه پوینتو آیس و سونی <laughs> اون شما ها شوخی سرتون نمیشه باورم نمیشه این کاره کرده باشه ها باید به چشم خودم میدیدم حیرت انگیزه این خیلی خوبه که کرین ها رو یک جا میبینم پپ کرین پپ کرین معروف هستتون به خیر چرا کما که میتونیم باید خب شما باید از خودتون بپرسین که چقدر براتون داشتن مادیان پاشکسته نفر چهارده احتمالی از چهارده شرکت کننده میارزه چقدر میخواییم قرض بالا بیارین چون همهمون میدونیم که این است به اون مسابقه ربطی نداشت بن من از اتفاقی که بینمون افتاد ناراحتم مهم نیست صادقانه میگم و ناراحتم و دلم میخواد جبران کنم من بهت هزار تا نقد یسوس اورسا ارا نظر ببینم منی 1000 تا مال تو میشه هزار تا مال تو بالا تمام اون هزار تا مال منه گمونم بتونم چند تا استیک بخورم ها با یکم نوشیدنی و چند جفت جوراب 1000 <متصال> برای من؟ میتونم هزار تا شکلات یه دلاری بخورم <تصال> <تصال> سب کنین سهم من هر 1000 تا است من 20 تا گذاری کردم کجا نمی‌ذار کنم <متصال> چهل هزار دلار ه همراه افرادم هم دییا تریلرم با خودم آوردم شانس داره بهتون رو میکنه میدونم چقدر برای اون اسب دادیم همینجا تمامه مال من, من نیست خب چی میگی کوچلو نمی نیست باشه اینو تو جیبم پیدا کردم خوب گوش کن چی میگم این آخرین شان من یه چک تضمینی به مبلغ 100 هزار دلار می اگه این پیشنهاد رو قبول کنی شغل پدرتان بهش بر میگرد <تصفيق> آورم نمیشه خانواده کرنگ یک بار برنده شد چه در؟ دست من بود می گفتم رو با تریدر خالی برداد و رو از مزرعه امونو برم کنم اما این نصر منه چه مسابقه کلیاسپایی شرکت میدی؟ درست درسته کلیاسپایی محبوبه اگه این جامو ببره؟ پنجمین اسب سال من میشه گلی با یادش سوما سونیا چه شکلیه؟ چطور تمام مدت مسابقه همونارو میبینه. رو با بود نه خود از شهر پیدا کنم تا حمایت مون کنم هیچ کس فکر نمیکنه اون شانسی داشته باشه و هر کسی فکر کنی زنگ زده <تصفيق> هیچ بچه ایلی دیدی اونقدر با یه اسب خوشحال باشه آره دیدم برشتار سود باش بردار آفری سبقه متفاوتی عزیزم باهای ورود با اون خیلی سنگینه کلی کم کردم ظرف سه هفته تمریناتو قطع کن هنوز پول مسابقه رو ندارم باید بریم دفتر مسابقه و بایشون بگیم میخواییم کنار بگشیم آه من دیشب یه خوابی دیدم که سوار عصب بودم یه عصب سری من اون داشتیم اوه مثل فرشته ها پرواز میکردیم آخر خوابت بیدار شدم و دیگه نمی نمیترسیدم یکی گفت دوباره مسابقه بده متشکرم که خدا حفظت کنه هیچ کس فکر نمیکرد شرکت کنیم هیچ کس فکر نمیکرد اما تو موفق کنیم <تصفيق> شاید پاپ زود باشید سواری بانت بشید زود باشید برین صرف کن. باید باشه حرف دزنیم. میخوای چی بگی؟ من نمیگم. تو میگی. اومدم جناب سرپیکا رو ببینم. ایشون منتظرتونستم. لطفاً بفرمایید داخل. آقای <تصفيق> سرپیکا. من کیل کرینم. شما رو یادمه. پدرم، و اینم پدر بزرگمه. صبح بخیر. متشکرم به تلفنم جواب ددید. صادب ایست هزارتال. چهل هزار تا بابت معرفی، 80 هزار تا بابت ورودیه مسابقه. برادرم مارینیو مطمئناً اسبش برنده است. گلی اسپوی یک اسب بزرگه. گلی اسپوی فقط قول داره. اون بنف میزنه اسبش هم میدونه. چيل میخوام تو چشم نگاه کنی و بگی اسبت شانس بردن نشدن از اسب برادرمو داره اسب من تمام اسبوارو شکست میده تا و من با تمام نیرو به پیش میتازم راهی به سوی پیروزی و من با صاحبم در جمع برندگان آشنا شدم آنجا که یک بغلگل گل بر فردا ریفت فرد محکم بود دو. به خاطر پدرم اون سزاوار زبری مسابقه خوبه چه دقیقه سب تو این 21 مسابقه پرورش دهندگان ده چند تا اسب مادیان تا به حال برنده شده؟ چه؟ فقط چهار مادیان شرکت کردن. اون اصلا آماده نیست حق با پالمر بود این کار باعث شرمندگی بونه میشه من دارم چیکار میکنم پا؟ تو فردا میری به مسابقه پرورش هم چون این یه هر پرورش ای است این آرزوی هر پدریه آرزویی که به ندرت برآورده میشه آرزویی که فقط به من اعتماد کن گوش کن لیل و کیل فرد و صبح با ماشین میرن اونجا و لیل درسته میدینه باید کجا بری برای همین تو هم بیا پا با, با عنوان پسرت ازت میخوام که بیای و پیش منو کیل باشی باش باشه خوبه؟ این پیرن رو برای تو آوردن مطلق به مزرعه پرورش اصبه کرین برایتی حالا عروس و نوم رو به جایگاه ساحبان اصبی برم تا با حضور تو جایگاه به همه پوز برم محفظ بچکرم خانم کرین میده کاش دو هفته دیگر وقت بشتی دی. کاملا آماده است تو زندگیش رو نجات دادی اونم لطفتر داد رو جبران میکنه اون برای تو میدوه آو شما انتظار چه نتیجه‌ای انتظار چه نتیجه‌ای رو دارم من انتظار دارم گلیاسپوی امروز روز خیلی خوب و خوشی در پیش داشته باشه آو بن اینجاست منجوس پاسبی به نام سونیدور پاشاکسه هی پن چطور اینجا با سونیدور و گلیاسپوی عکس می‌گیرید یه فرصت کوچیک برای عکس یادگاری گناه، ور اقتصادی گریزت نیست، ور نیست، جرفت نیست. چدارش ممکن تو کنترل فنی؟ چی زنیمی؟ چی زنیمی؟ آروم. چی من من باورم نمیشه توی همون پوشی احساسی گربا میکنم. نمیدونم من حساس شدم یا تو میخوای چیکار کنی میخوای چیکار کنی اینسان بیارینش اینجا تو میخوای چیکار کنی بیارینش پدر درست با همون پای مشکل پیدا کرد کشش محتور کشی تا خوب بشه دیگه شانسی نداره این این این نهایت بچلسیه تو میترسی؟ میترسی که بالاخره ما موافق نشیم؟ متاسفان قربان اون کجاست؟ بیارش اینجا قربان سونیا فقط بیارش اینجا اون نمیاد تو منی منی سب کن ببینم اون نمیخواد <خط> جایی بره قدشمان قدشمان وقتی میخواستم بیارمش تو ساکرد به من لگت بزنه اینجا سنیا بیا سب کن آروم باش تو چی میتنی آروم باش چی بهت میگه میدون یه چیزایی درباره باره زمین به پیش آنگی خود بدوه. خیلی خود ببر به جدا بریم بریم بری. بری. بریم سانیده ها من اینجا جایگاه مخصوص دارم من هایی جون اینجا برای صاحبان هست میدونم کمام هستی کمام هستی حیلی باشید. از شما متشکل بمنم خب حالا از کدوم طرف؟ از این طرف ارد تو <تصفيق> اینجا هیچ کسو نمیشتی؟ من نه منم نمیشتیم <تصفيق> خیله <فرق> از خودنان برای دور اول مسابقات 4 میلیون دلاری جامل پرورش دهندگان حاضر میشن و به میرانی بالاخره لحظه ای که انتظارشو میکشیدی دیوی تران میگسید یه خوبه و خودشم میدونه که خوبه اما امروز بعد از اون خیلی پرخش به نظر میار میخواهد در مسابقه ساهرینی شرکت کند. اون حالا به جایگاهش در دپار مییره و به ویجکو و سایر با ملحق میشه. آکندویت و پوینت وایس هم میانه. و این هم مادیان سونیدور با چابوک سوارش. سونیدور پنجمین مادیانیه که تا به حال در این مسابقات شرکت کرد اون به وایسیکلمن میپیونده. و اونم بله. والارتا چابوک سوار جوان اِتوریدور. ا اون تا به حال هرگز در تمام دوران ش در چ این مسابقه بزرگی شرکت نکرد حالا همه برای مسابقه آماده اند. و حالا شروع میشه همگی حریت می رو در مسیر خطوی قرار کووری ازپ بله پراسپیت به بل زیبایی هرچه میشن و خیلی فنی فاصله میگیرنا به پیش درآورات م میشن. میکن درست وسط دروغ در. هرکنییت به طرف بیرون میکشد از همون آغاز همه خیلی سری حرکت میکن فوریدون در ردیف دو تا به آخر درام میگه این درون وسط درام درام بوریوز بایر همراه شد همه چیز خوب پیش میره نفس ها شده صدای قریب شادی تماسا چیان شدیده میشه اسباب پیش میره میشه دوم رو هم پشت سر میزهدن حسار میاد که پای شابک سوار سنیدور از رکاب در اومده باشه رکاب مسئله امیدوارم که اتفاقی نیفته شابک سوار سنیدور تلاش میکنه که پای خودش رو در رکاب قرار نده خوبه هیتون برو هی برو صبر زنده فیروزی زیبا و باغرگه کردنی متشکرم پیدا همیشه متشکرم آمان متشکرم با خاطر درسلی که رو دادی ازت متشکرم خودش کلی پول میشه پول درم می دوم. زمین به لرزه در میآید. آید بر من می‌تابد و من با تمام نیرو به پیش می تازم. راهی به سوی پیروزی